در مورد عکاسی میدونید آیا تنوع مدل های مختلف دوربین های دیجیتال که در بازار هست شما رو سردرگم نکرده؟ میدونید تفاوت قیمت دوربین های دیجیتال به خاطر چیه؟ تاریخ دوربین عکاسی به کمتر از 160 سال قبل برمیگرده. در این سالها ساختمان این دستگاه پیوسته در حال تغییر و تکامل بوده. مخصوصا در سالهای اخیر با روند روبه افزایش اختراعات بشری این تغییرات هم سریعتر انجام شده در حال حاضر های متعددی پا به عرصه تولید دوربینهای عکاسی گذاشتند و دوربینهای بسیار متنوعی می میکنند که دائما به تعداد آنها افزوده میشه اما با وجود چنین تنوعی در حقیقت اختلاف مهمی در میان دوربینها نیست و اساس ساختمان دوربین تقریبا یکی است دوربین دیجیتال دستگاه الکترونیکی است که برای گرفتن عکس و ذخیره اون به جای فیلم عکاسی از حسگرهای نیمه هادی استفاده میکنه و تصویر گرفته شده به حافظه دوربین برای ثبت فرستاده میشه اهمیت این دستگاه به قدری زیاده که جزو کالاهای اساسی بسیاری از مشاغل و حتی خانواده ها شده خدا سلام می کنم به شما دوستان عزیز من نجوینه دهقان هستم باز هم با برنامه راهنمای خرید با شما دوستان عزیز هستم در برنامه امروز در مورد دوربین های دیجیتال عکسبرداری برداری با شما صحبت می کنیم اما استفاده از دوربین های دیجیتال عکسبرداری برداری بسیار معمول شده به طوری که هر کدوم از ما حداقل یک بار در طول عمرش این سوال براش پیش میاد که چه دوربینی بخرم چرا برای اینکه همه ما دوست داریم که لحظات خوب زندگیمون رو ثبت کنیم اگر به برنامه امروز ما خوب توجه کنید حتما میتونید متناسب با نیاز خودتون دوربین مورد نظرتون رو خریداری کنید چرا که ما امروز به مقایسه انواع دوربین ها از لحاظ فنی میپردازیم و شما با اطلاعاتی که دارید میتونید به فروشنده مراجعه کنید و دوربین مورد نظر خودتون رو بخرید اول در مورد انواع دوربین ها با شما دوستان عزیز صحبت می کنیم دوربین داریم دوربین های خانگی یا فشرده یا کامپکت دوربین های نیمه حرفه ای و دوربین های حرفه ای دوربین های خانگی یا فشرده و کامپکت دوربین هایی هستند که قیمتشون ارزونه و کارایی نسبتا خوبی دارند دوربین های نیمه حرفه ای دوربین هایی هستند که لنزشون قابل تعویزه و دوربین های حرفه ای دوربین هایی هستند که لنزشون قابل تعویزه بعضی وقتا لنزشون از خودشون گرانتره ببینید دوربین های حرفه ای رو با انواع و اقسام لنز با قیمت های مختلف حالا این دوبین ها به درد چه کسایی میخوره؟ به درد اونایی میخوره که کارهای هرفهی انجام میدن مثلا میان تو جام جهانی اکس برداده میکنن از فوتبالیستایی که دارن فوتبال بازی میکنن به سراغ دوبین هایی دیگه دوبین نیمه هرفهی دوربین نیمه هرفهی هم مثل دوربین های هرفهی لنزشون قابل تعویض منطقه که دارن یه کمی قیمتشون ارزون تره به چه کسایی میخوره؟ به اونایی میخوره که برای مطبوعات عکس برداری میکنن پس اونایی که علاقه که برای نشریات و مطبوعات اکس برداری کنن میتونن این دوربین ها رو خریداری کنن اما بریم سراغ دوربین های خانگی, یا فشرده یا کامپکت. دوربین های خانگی دوربین‌های هستن که اینجا قیمتشون متفاوته. به سه گروه تقسیم شدن: از 150 تا 300 هزار تومان، 300 تا 600 هزار تومان و 600 هزار تومان به بالا. میخوایم مقایسه کنیم مشخصات فنی دوربین‌های خانگی رو با هم دیگه. اما نکته‌ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنید، اگر موبایل شما با کیفیت عکس برداری می‌کنه، دیگه لازم نیست ها رو خریداری کنید. با با همون موبایل هم می‌تونید عکس‌های زیبایی بگیرید. اما اگه دوست دارید دوربین‌های خانگی رو خریداری کنید، به مقایسه مشخصات خوب ابتکاد کنید. اولی موردی که راجبش صحبت میکنیم لنز این دوربین هاست. در کنار هر دوربین یا روی لنز دو تا عدد نوشته شده. یه عدد کوچیک با یه عدد بزرگ. عدد کوچیکه هرچی کوچکتر باشه شما فضایی بیشتری رو در تصویرتون میتونید جا بدید. ولی عدد بزرگه هرچی بزرگتر باشه به سوژهتون نزدیکتر میشید. یه نگاهی به این عکس آب ببینید فضای بیشتری رو تو این دریافت میکنید. یعنی تصویر وایتره. برای همین هم اگر شما علاقمند هستید که اکس های دست جمعی زیاد بگیرید، بنابراین بهتر دوبین های تری رو خریداره کنید در صورتی که بخواید که به سوژهتون نزدیک بشید و یا یه سوژه های تکی مد نظرتون باشه مثل برج میلاد که دوست دارید که از خود برج میلاد عکس برداری کنید اگر اون عدد بزرگ, بزرگ بزرگتر باشه به سوژه نزدیکتر میشین یعنی تله تر میشه ولی اگر این عدد بزرگ, بزرگ کمتر باشه یعنی مثل اینجا که 165 از سوژه دورتر میشین مثل این عکس برج میلاد که هر دوشم با کیفیت خیلی خوبی گرفته شده با دوربین های خانگی مرد بعدی نوع حسگره. حسگرها دو نوع هستند: دی و CMOS. حسگرها همونایی هستن که کار فیلم عکاسی رو در های قدیمی انجام میدن. CMOS ها از CCD ها گرونتر هستن و الان روی نیمه هادی تصویر ضبط میشه. این رو خوبه که بدونید. اما دقت حسگر هم خیلی مهمه رو کیفیت تصویرمون تأثیر میذاره از 150000 تومان تا 300000 تومان اگه دوربین باشه، دقت اسکن 16 مگاپیکسل. اما اگر بین 300 تا 600 هزار تومان قیمت دوبینمون باشه، دقت اسکنش تا 17 مگاپیکسل و از 600 هزار تومان به بالا دقت هسکرش تا 20 مگاپیکسل که الان که دارم باهات صحبت کنم، این رقمه ولی ممکنه که با پیشرفت های زیادی که علم داره، حتما دوبین های دو دیجیتال هم پیشرفت کنن این عدد روز به روز بالاتر میره. موارد دیگه ای که میان مقایسه می‌کنیم در دوربین‌های عکاسی لرزشگیر و صفحه نمایش اندازه و کیفیتش هستش. لرزشگیر چیه؟ خیلی وقتا شده شما می‌خواید عکس بگیرین عکستون دستتون لرزیده، تار شده. اما این امکان وجود داره که دیگه تصویر تار نشه. دو نوع هستش دیجیتال و اپتیکال. دوربین‌ها هر قیمت قیمتشون بالاتر میره، از نوع اپتیکال استفاده می‌کنن. در مورد اندازه و کیفیت صفحه نمایش هم براتون بگم که صفحه نمایش اکثلا دو هفته همه اینچی هستش دو هفته همه اینچی یعنی که از این قطر تا اون قطر اندازش هستش و کیفیتشون از 23000 نقطه شروع میشه و هرچی این عدد بالاتر بره کیفیت صفحه نمایش بهتر میشه مورد دیگه که مهمه در هر دوربین شارج باتری دوربینه قدیما ما دوبین ها از باترهای قلمی استفاده می کردن باترهای قلمی امکان داشت که شما در هر محیطی که بودید می یکی داشته باشید و به محصیم که شارژ باتریتون تموم شد اونو تعویض کنید اما امروز از شارجرهای لیتیومی استفاده می شه که فقط باید با برق شارژ بشن و دوبین ها هر چه قیمتشون بالاتر میره از این شارژر استفاده می کنن. در مورد حافظه که محل ثبت اکس ها درش هست هرچی حافظه بالتر باشه شما تعداد تصویر بیشتری رو میتونید بگیرید موارد بعدی که با هم بررسی میکنیم فیلمبرداری و ضبط صدا هستش تقریبا اکثر دوربین های اکاسی هم انجام میدن منطور دوربین های قدیمیتر با فرمت اشتی میگرفتن و جدیدی ها با فول HD تصویر برداری میکنن در مورد ضبط صدام دوربین های به صورت مونو بوده و جدیدها به صورت استریو این کار انجام میدن فقط مونو با استریو اینه که مونوها ها تک باده این کار انجام میدن و استریو ها دو بانده این کار انجام میدن. بپردازیم به سایر امکاناتی که یه دوربین ممکنه داشته باشه که این امکانات هرچی بیشتر بشه دوربین شما گرمتر میشه بنابراین این دقت بهفرمای دوربینه رو تهیه کنید که متناسب با نیازتون این امکانات رو داشته باشه مورد اولی که بررسی میکنیم تشخیص لبخند و چهرست در این عکس که به صورت وایت هم هست می بیننید که سوژه اصلی چهره بچه هاست که دوربین حسکرش قابل تشخیص چهره بچه ها رو داره. مورد بعدی تشخیص لبخنده به محض که این کودک لبخند میزنه عکسش گرفته میشه. اما امکانات دیگه دوربین ها چیه؟ اشتراکگذاری فوری اشتراکگذاری فوری امکانیه که میتونید که عکستون رو با دستگاه های دیگه شیر کنید یعنی اینکه به دستگاه های دیگه منتقل کنید که این امکان رو دارند. مورد بعدی چیه ضد آب و ضد ضربه بودن اگر شما عکاسی زیر آب ندارید، پس لازم نیست امکان رو خریداری کنید یعنی یه پول اضافه ای رو باید بابت این امکان بدید بنابراین ببینید که آیا لازم براتون یا خیر مورد بعدی عکاسی عریض یا پانوراما است که می‌بینید که فضای دید بیشتری رو در عکس در نظر گرفته شده و تصویر بعدی رو اگه مشاهده کنید می‌بینید که یه تصویر عریزی داریم یعنی سراسر تصویر هستش و این تصویر از زوایای مختلفی می‌تونن گرفته بشن می‌تونن 180 درجه باشن یا 360 درجه ببینیم باز هم امکانات دیگه‌ای که ممکنه یه دوربین عکاسی داشته باشه فوکوس اتوماتیک موقعیت یا به GPS. اکاسی در شب خروجی USB و HDMI، اکاسی سبودی، میکروفون و اسپیکر داخلی و صفحه نمایش لمسی هم جز امکانات فرعی یک دوربین دیجیتال هستن که باز هم تاکید کنیم که متناسب با نیاز خودتون این امکانات رو خریداری کنید. اما مواد دیگه‌ای که می‌خوایم در این برنامه راجبش صحبت کنیم، محتویات داخل بسته محصول هستش. کیف حمل بند دستی، درایور دوربین، مموری، شارژر باتری، کابل اتصال به رایانه یا تلویزیون امکانات دیگه‌ای هستند که دارن. یکی از امکاناتی که خیلی هم مهمه همین دفترچه راهنماست که خوبه که دفترچه راهنما رو مطالعه کنید خوبه که دفترچه راهنماتون فارسی باشه که تا راحت بتونید امکانات دوبین رو بشناسید و باش آشنا بشید و به کارش بگیرید اما بپدازیم به مبحث بعدی که تو برنامه امروز با شما صحبت می‌کنیم اهمیت تناسب کالا با نیاز خریدار هست ما همیشه در هر برنامه تاکید می‌کنیم به شما دوستان عزیز که متناسب با نیاز خودتون کالا رو خریداری کنید چرا چون اتلاف خزینه نداشته باشید خزینه نگهداری افسایش پیدا ا اگر شما از اون امکان استفاده نکنید و کارایی پیشده میشه در صورتی که استفاده نشه دوربین های حرفه هم در بعضی مواقع و مکان ها احتیاج به مجوز دارن بنابراین دوربین های باید که نیاز به مجوز نداشته باشند تا بتونید در همه جا ازش استفاده کنید. اما روش های خید به چه صورت خید حضری میتونید داشته باشید به خیابان جمهوری مراجعه کنید کادا رو ببینید و مستقیم پولش رو بدیدید و خیداری کنید می اینترنتی داشته باشید به فروشگاه های معتبر اینترنتی سریع بزنید کالاتون رو سفارش بدید البته با رمز دوم کارت داشته باشید برای پرداختش یا نه سفارش بدید کالا رو بیارن در منزلتون با درگاه وچه سیار یا پوز پور رو واریز کنید ما اینارو گفتیم تا شما دوستان عزیز بتونید یک خرید خوب داشته باشید. سعی کنید دوربین رو خریداری کنید که متناسب با نیازتون باشه چرا که هر امکان دوبین بالاتر بره کار کردن با اون سخت‌تر میشه. اگر عکاسی اولویت اولتون نیست، برنامه دوبینی متناسب با نیازتون که کارایش راحت باشه تهیه کنید. خب از اینکه با برنامه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم تا برنامه دیگر شما دوستان عزیز رو به خدای و و خدا نگه.